جنس شما رست طریقی رو داره میگه از قطعه خوچیت نداره لیکن نظاهره کنام من تبدم یعنی که هاش فی سیاق کثیر شک اراده تو غیر حاضر قسم یعنی اراده قطعه طریقی. قطعه طریقی مخواد قطع طریقی قطع طریقی در میخواد بگو چیت نداره هلا قطع موضوعی رو اگه بنابود بیاره در این سیاق نمی آورد بخواد این که قطع رو در کنار کسی شک آورده و این که اولا حکم بردم اعتبار شکی کسی به شک کرده و قاعدی شده به احکام شک در حق کسی رو شک یاری نمیشه بعدن هم عطف کرده قطع رو بشخص کسی رو شک این ظاهرش اینه که قطع طریقی رو میخواد بگه به خاطر اینکه کسی رو شک تردید در واقع داره بنابرای میخواد بگه برای کسی رو شک اون واقع احراز نمیشه حضا قطع هم از این نوع باید باشه یعنی عتیقه کاوشک از واقع از این استفاده میشه که قطع تا نقاط تاریخی رفت. حالا خود تعبیر هم تسامح داره به خاطر اینکه قطع موضوعی هیچ موقع بحث از حقیقتش نمیشه. وقتی میگن قطع حقیقت داره یا نداره، یا بین نقاط تاریخی میگن. قطع موضوعی معنا نداره بگیم حقیقت داره یا نداره. این بی‌معناست. ما یه چیزی بگیم بعداً توضیحش کنه. اگر بحث از حجیت قطعه، یقینا قطع تاریخی است. چون معنا نداره بگیم قطع موضوعی حجت داره یا نداره. قطعه موضوعی بحث اینی که آیا این موضوع واقع شده یا نشده. معنا نداره در رابطه با قطع موضوعی بحث از حجیت بشه. حجیت حکم قطعه موضوعی یه قطعیه که در موضوع در عقص میشه آیا شارین رو در موضوع عقص کرده یا نکرده این دقیق از اینی که حجت باشه قضا معنا پیدا نمیکنه کنه قطع موضوعی بخواد بحث از حجیت بشه بخواد اینکه که قطع موضوعی واسطه در سبوته حجت همیشه واسطه در اثباته قضا لازم اینطوری ما به تکلخ بیافتیم بیایم بگیم حتما مرادش قطع طریقی بوده و قطع موضوعی نبوده نیازم این بحث ها نیست به نوریده بهی عدم اعتبارهی فی مقامات یعتبر القطع و فیها من حیث و و کاشفیت الواقع و عن الواقع ولی اگر مراد که آشوپلغتا از نفی و جیت و قطع تا هم قطع طریقی قطط مثل ساحل قطع که حاصل میشه خب مصنف حساب میبره از که آشوپلغتا و حرفاش رو سریحا نمیتونه لفت کنه دوست تا احتمال در حرفای که آشوپلغتا نوعی میاره و که تلویهن وقتش کنه و میگه اگر مرادشین ها باشه جوابشینه و به خلاف صاحب جواهر که بنده خدا رو سریع هم میاد ردش میکنیم حالا از های فقی هست بین کاشفرگتایی و صاحب جواهر به نظر من تا بابل دیاز نیستن صاحب جواهر ما سریع ردش کنیم و کاشفرگتا را تلویه هرونم با لعی تب و لعلا بخونی ردش کنیم حالا کله ها ذهنیت ذهنیتیه دیگه ذهنیتی نسبت به کاشفرگتا داره کاشفر و صاحب جواهر جاز به حضر محاصرین اتنه حساب نمی‌کند. کن و این اریده به هی ادم و فی مقامات نیعتبر و القطفی ها منهی سلکاشفیت و طریقیت الالواقع فی این اریده به ان انهو هین قطعهی محکومون و انهو کش شاک یعنی قطع،, قطع تاوتیت نداره به این معنی که وقتی هم قطع به چیز پیدا میکنه از نظر شرعی و وقلهایی محکوم به اینه که این مثل شاکه قطعش کلا قطعه یعنی قطعش ملحق میشه به شک فلا شکه هین ازن فی ان احکام شک و احکام شک و غیر العالم لا یجري فی هفته اگر ما قائل شدیم به این که قط... قطع که, این که قطع داره ما یا شاک حساب می‌کنیم. لا شکفی انه احکام و مثل بنابی بر اکثر در شک در وکات و احکام عالم مثل اصالت البراعه، اصالت الهلیه و امثال اینها لا یجریفی هست یعنی با اینکه ما این رو قاطع بوده وجدانن اجدانه اومدیم شاک حساب کردیم و ازالک آثار شک برش مترتب نمیشه. لا شک فیان نحکام و شاک و غیر العالم یا لا یجد فی چرا؟ بخواهد این که این قاطع اونها شاک هست و قاطع احتمال خلاف نمیده رزا که شعاره بیاد بگه این شخص محکوم به احکام شاکه تناقضه مفتوزینه که این شخص قطع به چیزی پیدا کرده این دید از شخص جاهل و شاکه پس اون احکام لایچی فی حقه به خاطر این قاطع احتمال خلاف نمیده لذا اگر شعارو بیاد بگه قطع شما موجیت نداره این تناقضه لذا محقق کنه اینه اگه مراجعه کرده باشید قائل شده بین که ماهان نوعاً قائل به ذاتیت و حوچیت فرا قطعیم نمیتونیم بیایم بگیم قطعش و نداره در قطع نمیتونیم تصرف کنیم در حکم قطع هم که حوچیت باشه نمیتونیم تصرف کنیم نیاییم در مقتو تصرف کنیم با مطمئن ملجه که داره اومد در مقتوع تصرف کرده و گفتی دلیل دومی اومده قائل شده به این که این قدهایی که ما گفتیم موثیت داره واقعیت ذاتیه باید از طریق خاصی حاصل شده باشه و اگر از یک طریق دیگه‌ای غیر از این طروق متعارف حاصل بشه اونها رو ما قبول ندیم تصرف در مکتوب گده و کیفه کوم شورع علالقاطعه بالتکلیف الرجوع الی اساله البرا چطور شعره میتونه به شخصی قاطع به تکلیف بگه شما هسته برایت بنابراین اگر گفتیم قطع قطع شد چیت نداره به این معناه است که همینه قطعی محکومون به نهو شاد کن احکام شک برش باری نمی... جاری نمیشه به خاطر اینکه قیف و حکیم و شعره علال قاطع به تکلیف رجوع الاره مادن ده علا عدم الوجوب اند ده عدم العلم لذا میشه تناقض و همچنین کیفه احکام علا القات و انهو سلا سلا به سرکت داره ما بگیم شما محکوم ببین که به علا انهو ان سلا عربه به رو بذاره بچه ها نمیشه و نه زاله خب اگر این قسماشه یقینا محکوم به احکام شکل میشه. بیایم دیگم این شخص ای قطعی کشاک این مردوده نه ما طور دیگه بحث کردیم حالا برای که آنجه هم بشن اولش هم هست یه مقدر از مشکل بکنه به این تا دست نیست این که بحث نمی کن باید تشقیق شقوق علم حاصل نمیشه. شد هین قطعی هوا هی هو بکشا این احتمالات تصوراته غیر تکازیان اینها، اینا شخص قطعه ما در جزوه به دو نه حلش کردیم یکی از طریق حسابه یکی از طریق تضعیف این ماده شکاک و قطع از نظر تکازی، اونایی یعنی هم که شکشون و قطعشون ضعیفه ولی حالا مصنف این طوری پیش میده به این اوریده بزانه اگر مرادیشون عدم اعتباره قطع قطع یعنی که آشفال قطع اگر مرادش این شرک دومه و این اریده به زالگ یعنی به عدم و حسیت قطع وجود وجوب و رتعی رتعی ان قطع و تنزیلهی به منزلت شک چهارو بعد از این قطع پیدا کرده این رو بگه به قطع نباید عمل بکنی و اینو تنزیل کنه به مرتبه شک و بگه وقتی شما قد پیدا کردی به اینکه چیزی واجبه اون وجوب رو ما از شما بر می داریم. او تنبیه هی علا مرضه یا شعر بیادی کاری بکنه که شما از نظر متعارف مردم مریض حساب می شی و خیلی داری سریع قد پیدا می کنی تنبیه هی علا مرضه لیر تدر به نفسه آره بیاد بگه این قطع شما از این را حاصل شده مثلا یه شخصی برای ما خبری آورد میگه از کیش شنیده میگه از فلانه میگه اون فلانه تو اقدوم خب این قطعش از بین میره اینو از کجا داری میگی روزنامه خوندم روزنامه دلیل نمیشه رضا خود شخص بر میگرد از حرفش او تنبیه هی مرض و مرز تد لگرتد عب نفسه یاش آره بیاد بگه نباید بهش عمل بشه حجوب رده هی انقده هی او تنبیه هی علام مرضه هی لیر به نفسه هی به شخص قطعه بگه تو مریضی از نظر مطارق مردم مریضی مشکل روانی دیگه ولو با انیقال لغو انالله سبحانه لا یورید و من کل واقع شعر شما واقعه رو نمیخواد به این واقعی که شما قد پیدا کردی شعر از شما نمیخواد لو فوره از عدم و, و انتفاته لقطعی وان الله يريد واقع منه و من كل احد اگر بگیم این متوجه نیست که اشاره از اینها واقعه میخواد ما بیان بهش بگیم که از شما واقعه نمیخواد اگر مرادش این باشه ما بیان بگیم به این قطعی که پیدا کردی عمل نکن وجوب قطعش یا تنبیهش بر مرزش تا اینکه خودش دست بکشه فاو حق کن اگر مرادش اینه اینم باز حقیقت داره لاگ نهو لیس من باب عدم حجیت قطع القطا از این باب نیست از باب ارشاد لاگ نهو داخلون فی باب ارشاد جاهل لذا از بحث حجیت قطع خارج میشه یعنی شخص جاهل رو ما تعلیمش میکنیم از باب ادم و حجیت قطع قطع نیست که محل بحث و سولیینه یه ای شخص جاهلی رو داریم یاد میدین حالا اون جاهل جهلش به خاطر قفلت باشه به خاطر شک باشه به خاطر قطع به خلافش باشه تمام این داریم ارشاد میکنم به طرف چیزی که صلاح خودش لیکن نهو داخلون فی باب الارشاد و از باب ادم و حجیت قطع قطع نیست یعنی ارشاد جاهله ارشاد جاهل در موضوعات که وجوبش مولویت نداره و تصرفاتش هیچ محصولی نداره و لا یختصب یعنی این باب وجوب ارشاد جاهل اختصاصی به قطع نداره یک قاعده تکازی و و شرعیه بل به کل منقطع، به ما یقتع و به خطایی فیه من الاحکام شرعیه و موضوعات خارجیه به بهفظ نفوس و اعراض بل الان فلجمله یعنی اموال کسیره میگه این وجوب ارشاد اختصاص به خطا نداره در سه مورد واجب اشخاص رو ارشادشون کنه به کل من قطع به ما و به خطای فیه من الحکام شریعه که سه مورده در سه مورد تعلیم شخص جاهل و ارشاد جاهل واجبه و معناش اینه که در غیر این سه مورد واجبه یعنی ارشاد جاهل فقط در سه مورده یکی در باب نفوسه که شخصی قد پیدا کرده که این رو باید بکشه با اینکه ما میدونیم یقینا این اشتباه می کنه تعلیمش و ارشادش واجبه دوم در باب اعراضه مثل اینکه شخصی قد پیدا کرده به اینکه به حلاله میتونه باشه ازدواش کنه حتما باید بهش بگیم و یکی هم در باب اموال کسیده هست به اینکه شخصی قد پیدا کرده به اینکه تصرف در این مال جائزه یا ربای استثماری جائزه این هاره انسان باید بگه ولی در قیل این صبر سلاس لازم نیست شخص جاهز ما ارشادش کنیم مثل اینکه یک نفر میخواد با لباس نجس نماز بخونه به ما رافتی نداره به طرف قبل نمیخواد بخونه پشت به قبله داره میکنه اونم به ما رافتی نداره بدون وضو میخواد بخونه اونم به ما رافتی نداره و خواب مونده نمازش داره میگذره اونم به ما رافتی نداره هیچ کدامش از نظر مشکور وجود نداره چون تکلیف مال خودشه و مفروض اینکه این شخص جاهله به معنای آمنه یعنی یا قافده یا شاکه یا قاطع به خلاف در هیچ کدام از این موارد عبدن ارشادش واجب نیست الا در سموره یکی نفوس یکی اعراض یکی اموال کسیره یا اموالی که انسان احتمال میده حرمتش حرمت ذاتی باشه مثل هلیت ربا به شرخ باید بگی که این شما ربمیه یا اینکه تصرف شما در این قضا از بیت المال وجایز نیست. اینطور نیست که هر کجا ما رو دعوت کردن رفتیم، خوردیم. مثل خیلی از نهادهای دولتی که سور میدن، اینا خوردنش به چه وجیه؟ حالا بگیم نه، اینا خود مدیرش، خود رئیسش، خود فلان شخص مسلطه. این ها ثابت نیست. کسی یعنی در بیت المال ابداً نمیتونه تصرف کنه. ولو بخواد افتار بده ولو بخواد نمیدونم هدیه بده در نحضر بلاقه داره حتی نسبت به قلمی که دارم مینویسن تیزش کنن جوهر کم کن برداره حالا ما میبینیم برای یک مطلب ده تا کاغذ علکی هدر میشه این مدرسه ها مدرسی نوزید یکی یه دونه بلچی کاغذ رو برده بونه می اینو امزا که یه مدیرش میگم ببینه بیت الماله چی میفستی اخه؟ اینا چی این ها بیتلماله جمع میشه در یک کشور میبینی چقدر دارن حدر میکنن اموال بیتلمال مال الله خزمل ابله نبتتر ببین یعنی خیلی گوارا و راحت میخورن بین یا مثلا بانک ها رو چقدر شیکش میکنن این با چه پولیه مسجد ها خراب دستشوی نداره بزخونه نداره محراب نداره فرش نداره خیلی از منطقه ها میبینیم مسجد نداره و بانک های شی کناره این ها بهتلمال نیست استانداری گرگان رو نمیدیم دیدید کاخ سفید درست کردن و یقین دارم تجهیزات داخلش بیشتر از تجهیزات کاخ سفیده این ها بهتلمال نیست یا آقای رفته بود برای افتتاحش یه زمان بعدا بهش گفتم چرا اینطوری گفت ما هم قبول نداری قبول چرا افتتاح میکنید اینا شما برو بگو اینطوری آقا من جار افتتاح نمیکنم کنم برگرد بیا شما میدی افتتاح میکنی بعدا میخواد دیدات میگیری بیتلماله لذا در اموال کثیره و اموال خطیره اموال خطیره غیر از اموال کسیره است در بعضی از روایات هم داره که اذا کان له خطرون خطورت تاید از کثرته مثلا حلیت ربا خطورت داره یا مال بیت مال خطورت داره ولو بگی یه پرس قضاست دیگه چیزی نیست که و امثال اینها در اموال کسیه و خطیره و اعراض و نفوس ارشاد جاهل واجب میشه اندل مشهور ولی در غیر این موارد تکلیف مال شخص ارتباطی به ما نداره در لباس که خون هیز برش هست داره نماز میخونه که درهمش هم معفوق نیست به ما نداره نمازش هم درست پشت به قبله داره نماز میخونه اونم به ما ربکی نداره گوشت غیر زبه شرعی داره میخوره اونم به ما نداره در هیچ کدامش گفتن اشاره جاهل لازم نیست الا این سماره. نظر مشکول اینه و این نظر غیر مشکول دوتا قول دیگه از اون دیگه فرصت میسرم بگ کی گفته؟ به ما کی گفته به ما اصلا به مالرکی نداره. هیچ کارکی نداره. اینا برای حج در آوردن که آقا بیا همین صورت درست کنیم. متاسفانه بعضی از انحرافات اونقدر زیاده که انسان شاخ در میار. شخص میخواد بره حج، خمس میخواد بده، میخواد نده به ماچه. یعنی آقا لباس احرامش مشکل پیدا میکنه کی گفته؟ گفته لباسه لباس همشه از پول حلالش میره میخره از حقوق این ماهش میره میخره گلوگاه درست کردیم اینها درسته یا حملت رو درست کنیم روحانی کاروان از شخص میسوادیه یک ماه سفر حجشو میذاره حمله رو برای پیر زن پیر من این هشتاد ساله در این طور میخونه حالا میخواید درستش کنه که چی بشه مثلا چه دلیلی برش هست زمان و صاحب چواهری اینطور بوده اینا یعنی اونا که حج می‌رفتن اصلا هم رو درست میکردن ولی ماهاشون بیکاریم یه مقدار معلومات نداریم هر چی میگن قبول می‌کنه. حمدسوداش خراب به درک. لازم نیست حمدسودی چه رفتی به حج داره. خمسش چه رفته به حج داره. میخواد بده میخواد نده. نه آقا مشکل پیدا میکنه طوافه نسات مشکل پیدا میکنه به چیزای خوبی هم گیر میدن. حالا زیاد در این بحثا ولی من کل مجموع اینا مطرح نیست در سه مورد تعلیم جاهل و ارشادش واجبه در بقیه موارد واجب نیست و اما فيما عدا ذلک مما به حقوق ال خیلی انسان به ذلت میفته یعنی یکی داره میره حج هی این روحان کاروان میپل که دوروری اینکه یک خمسی از این در بیاره آخه بیچاره بدبخت چیکار چگار بکنی آخه حالی تو نمیتونی تنزل نیست افت نیست شخصیتی نیست برای یه روحانی ای گیر به این اون بدیم که یه مقدار خمسشو باید داریم بیاریم به ما اومدیه چیزی به ماسه خمس میخواد بده براقا در خاطر الان حساب به ما ربطی نداره من وقت ندارم به من چه و اما فی ماعدا زالک ما یه تعلق به حقوق الله سبحانهو ولی اونهایی که مربوط به خداست اونها اشکال نهده و دلیل علا وجوب رد فی القطا کما دلیل علیه فی غیر القتا. ولو بنی ولو بنی علا وجوب زالک یعنی وجوب رد فی حقوق الله سبحانه و تعالی من باب الامر بالمعروف و النه یعنی المنکر کماه و ظاهر و بعض نصوص و الفتاوا لم یفرق فرق ایزن بین القطاع و غیره ایشون میخواد بگه که بین دو تا باب از نظر فقهی فرقه یکی باب ارشاد جاهله خب ارشاد جاهل رو میگیم در سه مورد بقیه موارد واجب نیست. ولی امر به معروف و نحیز منکر وجوبش مطلب در تمام موارد. ماشرين هر از باب تعلیم جاهل و ارشاد جاهل بگیریم بگیم واجب نیست و از باب امر به معروف و نهی از منکر بگیر لذا اگر از باب امر به معروف و نهی از منکر باشه در خیلی از موارد وجود پیدا میکنه گفتنش ایشون میگه ولو بنی الامر و حتی میگه از اون بابن باشه بین قطعا و غیرش فرق نیست و رد قطعا در حقوق الله از باب امر به معروف واجب میشه. حالا اینا ایشون اینطوری فرموده ولی نیاز به تفصیل داره اینو فردا مفصل این دو تا باب رو توضیح میدم. گفتم آقاین تا جمع بشن این متن یه بخونیم. حالا بحث در این بود که شما میتونید تحقیق کنید باب ارشاد جاهل و امر به معروف و نهی از و در نهج البلاغه عبارتی داره که تمام احکام دین یک طرف و امر به معروف یک طرف تمام احکام شریعت قطره و امر به معروف اقیانوسیه تعبیر در نهج الملا یعنی اینقدر اهمیت داره ولی متاسفانه ما الان نمیتونیم بگیم آقا این لباس رو نپوش این زن بگین تو حجاب نگیر نمیشه بگی. ما دیروز هر تهران بودم یه چیزی که اخیرا داره زیاد میشه دست دادن زنها و مردم اوج گرفته زن وارد میشه با همه مردها دست مید. چیزی هم نمیشه بگی بگی میگن آقا توهین کردی به خانواده مردم خیلی ذلیل و خار شدیم. هیچی نمیشه بگی حالا لباسشون وزعشون همه چیزش بکنه بیمارستان فوق تخصصی برای مریضش چیزی نداره اومده یه بندر خیلی بزرگ زده دم درش کوچک کردن سینه بزرگ کردن سینه تنظیم ران امثال اینه آخه خدا میدون آدم بشینی گریه کنه این چه وضعیه فوق تخصصی برای مریض خودش میگه آقا هم پون نداریم نباید خودشون برن بگردن میگم تو اینقدر فهم و شعور داری که نمی‌تونی تبادل کنی با یه بیمارستانی. و میگی بیمارستان میداد داره از اون بگیر بیار اینا چی آقا اینا چیه زدید اینجا یعنی قبه و گناهان رو همه چیز علنیش کرد قبلا نبود خدا میدونه دکتر مملکت اومده فوق تخصصی کوچک کردن سینه و بزرگ کردن سینه اشای فرشانی نیست اگه اینا فحشا نیست پس ما هیچ فحشایی نداریم هیچ فهش های بنابرای نیست این دیگه فهش نباشه چیز دیگه فهش حالا به ظاهریشون رو نمیدونم نماز نخوندنه هاشون همی چیزش به یعنی لمس زن و مرد در هر دینی هم باشن از نظر اسلام حرامه اون مبتزلات رو میگن میشه نگاه بکنیم ایلا لمس زن حرام مطلب اصلا ترخیص نداره این شده یه ای عرف متداول فعلا دارن دست میدن در رابطه با قطعال و جوزوهای قبلی نمیدنم تا کدوم قسمت خونده ایم آقای دارید این جوزوها اصلش درست من نیست در اینجا مشغول درست خوندن به فرزان میریم میگن یعنی آقا به من میگفتن چرا با لباس اومدید بدون لباس بیا این که زشتره. من بخاطه که به من توهین نکنم بدون لباس برم او فهم آره راحت لباس ها را آخون در میاره و میگن آقا موقعیت کنید توهین به لباس میشه ایمارستان نمازخونه نداره همه چیز داره نمازخونه نداره ویش پر برای تبلیغ شده شما نمازخونه رو اینها رو باید تبلیغش کنی نه اینکه دارو الان داروخونه ها همش شده لوازم آرایشی اما کوک برید ب دار لوازم آرایشی یکی هم میگن نه اینا دیگه مشتری داره میخوان از ما مشتری غلط می کنه اینا رو از شما میخواد صفحات میبینید صفحات آبی ببخشت همین در بدم اون صفحاتی که متاشتم میخوندم آره همین جواب آره. آره. آره. آره آره گفتیم اگر کسی بخواد تشخیص بده که قطع قطعی قطعی خودشیت داره یا نداره اینو باید به صورت یک شاکلهی در بیاره در ذهنش برا تحلیل خیلی خوبه القطع المصیب حجتون مشهور قایلن به عدم اعتبار حسابه چرا حساب مطلقه چه حساب واقعی چون میگن که ما هستیم به واقع میخواد برسه میخواد به واقع نرسه من حساب عقلی هر اصلا قائل نیستن حساب عقلایی هم نفیش کردن بلکه اصلا تو ذهنشون نبوده حساب به معنای عقلایی شو تو ذهنشون نبوده که اصلا باید این قد بر گرفته از مبشرات و, و مناشع عقلایی باشه به حساب هر اونها معتبر نمیدونن ولی اونهایی که معتبر میدونن اونهایی که معتبر میدونن گفتن باید مصیب باشه و در کلماتشون اومده مثل محقق نائینی و آغازی عراقی و شهین صدر و بعضی از معاصرین اینها اصابه رو واسطه در اروز میدونن یا واسطه در صبوت میدونن اگه ما به دوینا رو تحلیلش کنیم در خیلی از قضایه که مطرح میشه برای ماها به عنوان یک مبنای اصولی میتونیم جواب بدیم حالا این اصابه آیا واسطه در ثبوته که قطع قطع حسجت باشه یا واسطه در اروزه که حسجت نباشه کدومشه؟ حتما آقاییم به یک نظری رسیدنی سخیه 137 رو میخونم 131 شماره خورده در اون چیزه و ملاک ماه و ملحوظون پی مقامل چه و یاسم ماه به حیثیت تعلیلی این قسمت دارم میخونم و یکون واسطه تنفسو و امال موضوع بنابرای یه ملاک داریم یه موضوع داریم ملاک اونه موضوع فهو مأخوظون این این موضوع رو معخوض نوشتیم ملاک رو ملهوز نوشتیم بین لحاظ و عقص فرقه. فی مقام المجهور و یا سما تغییریه و یکون واسطه تن فلوروز ولحکمی حکم و مدار الموضوع وجودن و عدمن به خلاف الملاک و اینل حکم یدور و مدارهو وجودن لا الیت فعالیت الموضوع فعالیت الموضوع الیت الموضوع لحکمهی بقائیتون تا این موضوع باشه حکم هست موضوع نباشه حکم نیست کما انه اللیت الملاک لحکم حدوسیه. ولی اللیت ملاک نسبت به این حکم حدوسیه، یعنی در مقام جبله هاز میشه ولی لازم نیست همیشه این حکم دار مدار ملاک باشه حکم که انشاه شد ملاک میخواد بمونه میخواد بره حکم دیگه باقی میمونه و حاضل قائد تام متتون کوبریدن و این عمل مهم هو تشخیص و سقریات مهم اینه که سیات رو و تعقیح به کسی میگن که سقریات رو تشخیص بده. الان اگه شاخصه نسبت به مع تبریزی و نایینی و دیگران بود نهباخ این تشخیص موضوعاتشون قویه. زود تشخیص میدن که این موضوع از چه بابییه و چی بایدگی؟ تشخیص صغریات خارج و عمدت المیزان دی امثال المقام و مناسبات الحکم و الموضوع مناسبات حکم و موضوع مناسبت چیه؟ مرحوم علامی کتابی داره نهایت الوصول الى علم الوصول کتابای اصولی زیادی داره تهذیب و داره مباد الوصول و داره تهذیب الوصول رو داره بعد تعلیقی بر کتابای ابن داره کتاب اصولی علامه زیاد داره عمده ترین کتابش نهایت الوصول الا علم الوصول پنجل درخیلن هم چاک شده قبلا خدیل در اونجا مناسبت رو معنا کرد، مناسبت رو معنا کرده و خلاصه مناسبت لو ارز علال اقول تلقت و تو دو کلمه و سعی کنید را را از پیدا کنید من الان تعبیرش یا خودم به این نه در آوردم یا این تعبیرشه نمیدونم ولی تعبیر خوبیه لو زعلال اقول تلق قط خوب القب اینه میگم مناسبت نگی بقی مناسبت بعضی موقع مناسبت با دست میخوام درستش کنم بینی با دست میخوان درست کنم که مناسبت چی میگه نه تعریف میخواد تعریف اصطلاحی میخواد لوعر زعلال اقول هر چیزی ما گفتیم و ارتکازات قبول کرد، اورد قبول کرد معنی مناسبت لو اورزه علی الاقول تقال تلقتو به قبول. حالا مراجعه کنیم علامه تعبیرش این هست یا نیست. علی کوله مالیشونه اصل مطلب مالیشونه ایشونه. مناسبت رو معنا کرده. بعد تو جزبه های امروز من مناسبت رو این تعریف براش نیاوردم. ولی صفحه 60 نوشتم که مناسبت تفنیم میشه به چهار قسم المناسب المؤثر والمناسب الملائم والمناسب الملغا والمناسب المرسل چهار قسمه و اینا خیلی اهمیت داره به این نهل که نوشتیم مطالبه شه ولی اون اصلش دیگه ذهنم نبود اونجا بنویسم که اصل تعریف مناسبت وقتی یه مناسبات رو همونم موضوعی هنچی این چیزی که ارشتش کس و قبولشونه ما بگیم آقا الخمر حرام این خم خصوصیت نداره اون ازکارش که این حرام کرد اینو بگیم و قبول بکنن این میشه مناسبه لعور زعلال اقول یعنی همون ارتکازات و اقول ارفیه تلقج و بالقبول آیتون من آیات الاسور و مشروعین قبول برد مناسبات گفتیم ورفیه ولی که تشخیصش محارت میخواستیم آره اگه دیدی این موضوع باید این طور باشه تمام اختلاف فتحه با خاطر اونه تشخیص ها نسبت به موضوع و مناسباتش فرم کنه بسیار یکی میگه ربا خودش خصوصیت نداره اون زررش خصوصیت داره تحریم که اگه زرر رو داشتیم ربا حلال میشه یا سیس دیگه. دیگه این قاعده عام میهه مشکورم قاعده قرار تمام احکام غلائیه تمام احکام غلائیه و احکام شرعی غیر تعهدیه جایگاه و مجالات عدیده مناسبات فقط احکام تعهدیه است که جای مناسبت نیست ابدا قبلا هم تصریح کردیم الانم دارم میگم احکام که تقسیم میشه به سغس احکام تعبودیه محضمی میره کنار اصلا جولانی برا مناسبات نداره ابدا شما نمیتونید در ربابی های یه چیزی در بیاری از خودت بگیر استثماری اشکال نداره اون یکی اشکال داره ولی در احکام شرعیه به غیر تعبودیه و تمام احکام مقلایه از مجالات مناسبات بزن نایینی اگر نایینی شده به فاطره همین بوده خیلی خوب میتونه بسنجی حالا کتاب خیلی من اینجا آدرس نمیشنالم میگم اینا رو پیدا کنید بخونید که امور باید ریشه ای باشه ما الان از اول سال تا الان حثیت که یک مقوله است هنوز نپرسین جا بندوسید حالا اونایی که وجبی میخونن میگن اونا نمیدون چی میفهمن واقعا میفهمن یا میمونه مطالبش ما هنوز حثیت رو تمام نکردیم که در چه مواردی باید باشه در چه موادی نباید باشه هر دیگه ای شده شده این که مناسب کدوم انتبه. اون دیگه ذهن نماز... ازتطالیه اونا دیگه ذهنیت میخواد مهارت میخواد ولی حاصل میشه دیگه شما وقتی مراجعه کردی این اصل که طلب وقت بذاره به نهایت و اصولعلمه مراجعه کنه اینو نگاه کنه مطالب دیگر هم ببینه این خودش مقدمه فاز علم علمه ولی دقی کسی مراجعه نکنه یقینا یاد نمیگیره. ما وظیفه فقط همین. کتاب خوب رو معرفی کنیم و آقایانم وظیفه دارن دارم مراجعه کنن اگر کسی مراجعه نکرد عقب میفته و دیگه کسی مراجعه بکنه اون داره میده دیگه داره پیش رفت میکنه و امدت المیزان فی امثال المقام و مناسبات الهکم و الموضوع از خیلی ها من پرسیدن مناسبات یعنی چیه تعریفیش چیه میگن تعریف نداد. علامه تعریف کرده اومده اخسامی برایش یک کرده چرا تاریخ ندارم؟ بگیم میشه اینا یه چیزی بگن و تحریف نداشته باشه مرحوم آیش داردی ازش میپرده مثلا محل سحوی چیه میگو تو مسئله رو بپردی این چیه و این استراحه باب سلاته یعنی من الممکنی شخصی در نهایت که باحت باشه مطایش کلاحات رو ندید یعنی امکان داره و امدت میزان فی امثال المقام و, و مناسبات الحکم و الموجود و مناسبات اینجا گفتیم صفحه 164 قسمه همینا رو کسی حفظ کنه به هیچ کتابی هم مراجعه نکنه 20 سال از دیگران جدوتر این موقع واهمه بر نداره که ما نتونستیم کتاب مراجعه کنیم و نشد و اینا نه عین عبارت علامه هست یا تعبیر بهتر از تعبیر خود علامه لوقور زعلال اقول خلق قطو برقوی یا این تعبیرشه یا ساخته است و چیز خوبیه همینه حفظ کن اقسامش هم که اینجا نوشتم بعد کتاب الان میخونم آدرس دادم اونا رو مراجعه کن حتی اگر مراجعه نکنید کافیه. یعنی این جزوه ها سال جلوتر از شما هست این نیست که کسی وقت نداشته باشه من اگر به جای شماها بودم. روزی دو ساعت همی داره میخوندم بعدا هم میگرفتم <تصفيق> نسبت به این در می چیز دیگه هم می خوندم متشابهاته و می دید ما که لازمون و جزمه همون و حرفهامون محکماتی داره و متشابهاتی داره اون متشابهاتی رو با محکمات حل و اون در میزان امثال مقام و, و مناسبات رو من حالا خیلی وقت دم خدا میگون پیروز تهران بودم این روز صبح درگیر یه کاری بودم بعد از دور باز ما مریض بود رفتن بیمارستان تا صبح بیمارستان بودم عمل جراحی داشت بعدم اومدم اومدن اینجا اما دو روز نخوابیدم ولی با این همه من اینا رو میگه کجا نوشتم من تو بیمارستان نکوی نوشتم این طوری میگه که بگه نمیشه چرا نمیشه یعنی کشی عضری نداره بیاد بگه وقت نیست و خانواده از نفر و. یا ازنش به ما واسه نشد و عمدت المیزار فی امثال المقام و مناسبات الحکم و الموضوع فا این نمقت از المناسبه و کون الواسطه و روزی تنتارتن و اخرى و طریق و الى کشف زالگ و توسل الى القرائن الکاشفت ان الاناوین الموضوعیه و القرائن الکاشفت ان غیر الموضوعیه فالانمون الموضوع ماخوذ فی لسان الدليل هل له موضوعيه مطلقه او له موضوعيه في الجمله یعنی حدوثا فقط بينما تشخيص ذلك مقبول الى نظر الفقيه القدير قدير باشه یعنی بالاتر از خاطر قسمتی از در این جوزوه ها میخوام اون قسمت رو بگم آقای مطالعه کنم اون دیگه فرصت نسیم کنم بخونم یه طرف سفید، سفیده اطلاع همینجا بوده شاید همینجا نه شاید ورمان پیدا نمید آنه تفیص 162 پیدا کرد. این قسمت رو بیشتر مطال کنیم. سه, تا... سه تا راه گفتیمبرا تشیص کت این خیلی مهمه. ولی متداداخل نوشتیم میشون اینطور دی دیگر بنویسیم که بهتر تو ذهن ها بمونه وها س ان ممسبل بحث سغری که مقام تمیر، بین موضوع و ملاق باید تبدق بین علت محدسه و علت مطبه، و اندل واسط حلیه واسطتون حدوسیه و واسطتون بقاییه و علا فرض کون الواسط دخیلتن في ثبوت الحق یهرز و کونها حکمتن و علا فرض کون الواسط دخیلتن في فعلیت الحق به مقام المجهول و فی الخارج یهرز و کونها حیثیتن تغییدیه حالا این از این وقت سه تا قسمو داره میگه فلوکان الانوان المأخوز اول ملحوظ معخوز اونه که در لسان دلیل میاد ملحوظ اونه که اقلاعیه من سنخ ملاکات نوعیه این یکی اگه از ملاکات نوعیه باشه از سنخ ملاکات نوعیه باشه یا ملاکات خیلی متمایز باشه این هم قسم دومون یعنی هر ملاکاتی دیدید متماعیز نیست اون از واضیه هشمت میشه یا ملاکات نوعیه نوع خمرها مسکره. بنابراین همه حرام میشه و این اسکار میشه حکمت چرا هستون نوعیه و ملاکات غیل متمایزه ملاکات ایمانه ما کنیم تشخیص بدیم خود عدم تمایز اگر شما فقیش شدی انشانون تا سالمه و یه چیزی از شما پرسید اندیلی قابل تشکیز نیست استراب داره متمایز نیستن اینها در اون موارد حکم رو باید مطلق بگیم یعنی از باب حکمت باید باشه قابل ترخیص هم نیست به خاطر این که این ملاک ملاک غیر متماید مثل اختلاط میان اختلاط انصاب اینا متمایز نیست وقتی متمایز نیست همشون حرام هست در تمام موارد واجب میشه این دو برش و اسم ثبوتش انها امور و ظال که در نهها هل مور کهزیلات و ح منل راض خارجیهدم تو ح منل صاف واقعیه و یک کم اوصاف در مقابل مقابلعمل. تا سه اسمات داریم بیشتر هم تحفیل کنند یکی ملاقات نوعیه یکی ملاقات غیید متمایز یکی اوصاف. حالا یک تعبیر بهتری آقای یادشونن که گم فکر کنند. در سه مورد، جهات غیر مترد در سه مورد جهات غیر مترد یعنی ملاک غیر مترد مترد نیست یعنی در تمام موارد نیست مثل اسکار مترد نیست که برای همه مسکر باشه خیلی اونقدر خوردن دیگه یه بشگم بخورن مسکر نیست براش در سه مورد ملاکات غیر مترد موجه به احکام مترد میشه و اون سه باسم بارد از اینا ملاکات نوعیه ملاکات غیر متمالیزه و ارسان در مقابل ارسان در سه مورد شما ایشالله با عنوان فقیر وقتی فتحا بگید باید مطلقا فتحا بگید روا مطلقا حرام <تصفيق> یعنی حتمتیش در سه مورد ملاک غیر مستره الان اختلاط انصاب مترد نیست اونا که رحم ندارن اختلاط انصاب نداره مترد نیست منتها موجب چی میشه حکم مترد میشه در تمام موارد میگه اتواجبه چرا اینطوری شده بخواستم این تمایز ندان هیچ درستان تشخیص نمیده اینطوریز مهم نه الان دارن تشخیص میده چی تشخیص نمیده الان علم پزشکی افور کرده در اون پزشکی که افنسینا میگ پیش میکنه میرسه به نرسیده واقعا به خاطر اینا دنبال میزون کردن سینا نه دنبال علم میستن و میخواستم بیارم اینجا بخونم واقعا ابتذاه این همه تطبیقات اشای فرشا در این حد علم پزشکی با پروا مصر مثل سینا. که نادری اصل تا الان هم شیخ رئیسه در طب همون چیزیه که من موقع استاد ما در طب می‌فهمود که برای یک مریضیشون 11 تا علت گفته هنوزم یازده. چی بود یادم رفته به خاطی تقوا داشتن و خدا ترس بودن پول نمیگیره گرفتن مثل نیستن جراحی پلاستیک با دو میلیون تومن همه دیگه به همه دلده دماغشون کجر شدن ابتزاله و انحراف، انحراف فقط شراب خوردن و نیست اینا بدتر از اونه حالا این سه قسمه که ملاکات غیر مترد موزه باشون مترد میشه اینو ها حتما از 242 آقایی بیشتر فهمال کنم این اینها رو اومدم در صفحات 159 به بعد یه توضیحی دادم این توضیحش مرتبط به مکاسبه منتها از مال رساله. بالای سفقی 159 تا آخر الاحادیس و المعلنه در اینجا وردیم بحث کردیم و بعضی از مسادر اونجا من ذکر کردم برای قرب علت و حکمت و علت و و سبب و و خیلی از کتاب های عامه مثل الموافقات شاطبی جلد یک صفحه دیست و شست و پنج رو یاد دستتون نرسید برید تحقیق کنید الموافقات الموافقات شاطبی جلد یک و و پنج. بله؟ ارشاد الفهول شوکانی جلد دوم صفحه 171 الاحکام آمدی جلد 3 صفحه 249 المستصفای غزالی جلد 3 صفحه 620 مصادر تشریح خلاف صفحه 70 تا به بعد مساطر و تشریح مال خلا علت با... و حکمت بحث جردن. و از کتاب های خودمون نهایت و علامه صفحهشو نمی برم این ها اممه بودن این از کش از اوناست ابتخاجب در کتابش داره آدرسش نمیدونم پیدا نکردم بعد یعنی وقت نبود نگاه بعد نقایت و وصول علامه داره صفحهشو نمیدونم یقینا بحث کرده به طبعی ها. معالم داره بعد معارض و وصول علامه هلی هم داره اون دیگه اصلا یه پسی آورده بحث کرده معارض و وصول علامه هلی محقق هلی محقق هلی صاحب شرایی در معارض آورده بحث کرده بحثی خیلی خوبی در رابطه با علت و حکمت داره میخوام از اون مسادر از پیدا قیدار کنی نوشته های ما و یکی از کتاب دیگه باز از آمه روزت النازر مقدسی افن قدامه جلد سه صفحه و یکی هم مباحث صلحون اندل اصولیین این کتاب خوبیه از آمه مال محمد سلام جلد یک صفحه ست سی خلاف هم که در مسادر تشکیر آورده و اون صفحه شو از هفتاد به بعده این کتاب ها رو مراجعه کنید برا حدید بین علت حکمت از عامه و خاصه تا اینکه بیاد برسه به محقق نائمی بعد از اینکه این تمام شده صفحه 161 من از مشغور امامیه مطالبی در سید مرتضا و محقق در معارض و علامه علی در تحضیب آوردم بعد صفحه 161-162 و الفارق و بین الحکمته ولالله از نظر محقق نایمی خیلی مهمه محقق نایمی خیلی ید طولایی در این باب داره و خیلی هم سلیست نوشتن یعنی این آب روان ولی این مطالبش خیلی تنیه خوب مطالعه بشه خوب مباحثه بشه تا که از نظر مشهور و محق قناعینی و آمه این سه نظریه براتون منقه باشه تا اون دهی که در باب اقسام علل شرعیه خودم مطرح کردم اونا انشالله فردا میگن این سه نظریه رو حتما تون فردا هزمش کنید <تصفيق> <ملانجو انتسان> نه فقط. اصلش فقط اصلش از آمه چه تعریف کردن میخوام اهل مراجعه باشید هم مثل معادتی چی میگه، تابیلش چیه؟ من اینها رو نقل به معنا کردم، نقل به معنا شده، ولی تابیل خودش رو شما خودتون متن آن هارم بیارید خوبه، شما مراجب به الفهولش رو کنی بکنید بعد نیست، الموافقات شات بیه عده، هم آمدهی، و کتاب های دیگه که متفرج اندال آمده، یا کتابهای کنهاجی، ابناجی به قصودیه، قصودیه قابلی که عادی باشه و مطالبش و علامه در نهایت الوصول نو میاره و معالم ما شعن و نزولش کتاب های ابن حاجب یعنی به ترتیب همون اومده و بحثایی که در کتاب های ابن حاجب بوده مثل منتح سؤل و العمل طبق و ما ناورده معالمون نوشته بنابرای این شش در کتب عمه هست تعبیلاتشو پیدا کنید یه موقع ببینید برای همین بحث شما یک جزوهی 100 صفحه‌ای تونستیف به نمیزید. سه تا نظریه مال اینها و یه نظریه چهارمی هم عرض کنم و این چهارتا رو آقایم تنگهش کنن یکی دو سال جلو تایید <تصفيق> برخواه نه این جزوهای आरोम <laughs> न